اصل شانس دهم ده صبحونم که تموم شد دیدم تازه سر ظهر و تا دو کلی وقت دارم همین شد که زدم به پیاده روی این دوتا راهبه مدام جلوی چشمان بودن میدیدم که وقتی درس نمیدم با اون سبد کهنه اعانه جمع میکنن مدام مامانم و آدمای دیگه یا جاشون تصور میکردم مثلا خالم یا مادر دیونهای سالحیزو تجسمشون میکردم که بیرون فروشگاه بزرگی ایستادن و دارن برای فقرا با همون سبد کهنه اهانه جمع میکنن تصورش سخت بود تصور مامانم نه ولی دوطای دیگه چرا خالم آدم خیریه برای سلی به سر خیلی کار میکنه اما از این جینگلمینگلیاس که هر وقت برای این جور کارا میره همچین میپوشه انگار داره میره جشن عروسی چیزی هفت قلم آرایش میکنه اصلا نمیتونستم بدون آرایش و لباس قشنگش تصورش کنم که داره اعانه جمع میکنه مادر سلیهیزو که دیگه نگو فقط به این شرط میتونه بره و اعانه جمع کنه که هر کسی اومد اعانه بده حسابی از خانم تعریف کنه ما پولی پولی و بدون تعریف و تمجید درست حسابی از خانم بری. به ساعت نکشته ول میکنه میره. حوصلش سر میره. سبد دومید و میره نهار عیونی میزنه به بدن. از همین راهه با خوشم اومد. چون عمرا برن نهار عیونی بزنن. همینم خیلی ناراحتم میکرد. اینکه هیچ وقت نمیرن نهار عیونی بزنن. میدونم همچی مهم نیست ولی خب ناراحتم میکنه دیگه. از روی بیکاری کله کردم طرف برادوی سه سال بود اون طرف نرفته بودم تازه میخواستم ببینم یک شنبه این میتونم صفحه فروشی چیزی پیدا کنم که صفحه شرلی بینسکوچلو رو برای فیبی بخرم یا نه ترانهی بود درباره دختری که چون دوتا دندون جلو نداشت خجالت میکشید از خونه بیرون بره تو پنسی که بودم داستانشو شنیدم یکی از بچه های طبقه بالایی خوابگا داشتش خواستم ازش بخنم چون میدونستم فیبی خیلی باش حال میکنه ولی نمیفروخت فروخت ترانه خیلی قدیمی بود که این بابا استلا لچر سیاه پوست سال پیش خونده بودش جز نیورلانی قدیمی که خیلی خشن زمخت خونده بودش حسن <تصفح> محرکه بود حتم داشتم اگه سفید پوستی می خوندش انقدر نازشفه می که میرید تو کار ولی استلا فلچر کارشو بلد بود جدا یکی از بهترین کارایی بود که به عمرم شنیده بودم با خودم گفتم اگه یک شنبه این مغازه باز باشه سفر رو میخرم و میبرمش پارک یک شنبه بود و لابود فیبی میرفت پارک برای اسکیت بازی میدونستم بیشتر کجای پارک که. هوا به اندازه دیرو سرد نبود ولی خب آفتاب هم نزده بود و پیاده روی زیاد فاز نمیداد اما یه چیز خیلی خوب بود خانوادهی که مشخص بود دارن از کلیسا میان از جلوم رد شدن پدر و مادر و یه پسر بچه تقریبا شش ساله تیپشون ندار میزد پدره کل خاکستری نغرهی سرش بود از این مدل که سر آدم ندارست و همسرش گپ میزد و راه میرفتن همچین حواسشون به بچه نبود پسر <تصفيق> بچه خیلی بامزه بود عوض پیاده رو توی خیابون می لبه جدول خیابون طوری را میرفت انگار داشت روی خط صاف را رفت بچه ها معمولا از این کارا می تمام مدت با خودش می خوند و زیر لب ضرب گرفته بود نزدیکتر شدم بشنمم چی میگه؟ با خودش می خوند اگه ناتوره یکی اون نجات داد تو دشت سیده ریزی داشت معلوم بود حسابی شعر بلده ماشون رو ترمز میکردن تماشاش کنن پدر مادرش این خیالشون نبود برای خودش کنار زنجیره خیابون میرفت و میخوند اگه ناتوری یکی رو نجات داد تو دشت حالا بهتر شد انگار قم و قسم و جذب خودش کرد برادوی عین همیشه پر از و باش بود ساعت قبل از دوازه ظهر روز یک شنبه بود با این وجود قیامتی بود اونجا همه داشتم می رفتن سینما سینما، پارامونت، آسترو، ستراند، کاپیتونو نمی چی چی یک شنبه بود دیگه همیشه کرده بودن و همین یعنی تهزایه بودن از اینا بدتر تابلو بودنشون بود آلم و آدم می فهمیدن میرن سینما تعمل این جماعت رو نداشتم آدم میوه که برای وقت گذرونی و دهرک میکنم ولی این جمعاتی که با عجله حالا دست و پای همو بهش کنن تو زودتر برسن سینما حالمو به هم میزنن مخصوصا وقتی میبینم هزار نفر توی یکی از صفای عریض و طویلی که تا دو تا خیابون اون طرف‌ترم ادامه داره منتظرن تا جایگیرشون بیا بیاد دیگه هیچی اینجوری نمیتونستی عین آدم از خیابون رد شانس آوردم تو همون اولین مغازه سفر رو پیدا کردم. ولی پنج دلاری برام آب خورد چون سخت میشد پیداش کنی. ولی همین یه یهویی خوشالم کرد. من خواستم زودتر برم پارک و سفر رو بدم به فیبی. از مغازه بیرون اومدم. کنار دارخونه بودم رفتم تو. گفتم شاید زنگ به جیم بزنم ببینم واسه تعطیلات برگشته یا نه. رفتم تو با جو زنگ زدم. مامان جونش جواب و تلفن رو داد و منم سریغت کردم دوست نداشتم دو ساعت باش حرف بزنم اصلا دوست ندارم پای تلفن با مادر دختر حرف بزنم بعد میپرسیدم که جیم برگشته خونه یا نه ولی واقعا حسش نبود بعد برای این طور چیزا حال و حسله داشته باشی دازه بعد میرفتم بلیت هم می خریدم. برای همین روزنامه خریدم ببینم سالان ها چه برنامه دارن یک شنبه سه تا برنامه بیشتر نبود. دوتا بیلیت لژ برای نمایشه میدونم عشقم خریدم فکر کنم اجوره خیریه بود دوست نداشتم ببینم ولی میدونستم سالی خانم دوست داره خدایی جهلا بوده از خوشی پس میافتاد اگه میفهمه قراره بریم اونجا تازه زوج لانتزم توش بازی میکردن سالی از نمایشی که خوشگو و سطح بالا بودن خوششون میومد. اگه زوج لانتزم توش بازی کنن که دیگه هیچی من نه راستش من با این حال نمیکردم به بدی فیلم سینمایی نیستم ولی آش دنسوزی هم نیستن اولین هم بگم که از بازیگر جماعت متنفرم اصلا شبیه مردم رفتار نمی کنن. جالبه که خودشون خیال میکنن خیلی هم شبیه آدمهایی واقعی رفتار میکنن چندتایی از اون خوباشون چرا؟ کمی شبیه آدمهایی عادی رفتار میکنن ولی بازیشون همچین نمی دیرتد. اگر هم بازیگر خوبی باشه و اینو بهش میگفتی همین کافی بود تا همه چیز خراب بشه مثلا همین سر لارنسالاویه بازیشو توی فیلم حمله دیدم دیوی من و فیبیو برد که ببینیمش اول نهار خوردیم بعد رفتیم سر فیلم خودش قبلا فیلمو دیده بود و سر نهار همچین ازش تعریف میکرد که گفتم ببین چه شاهکاری از دست دادم ولی وقتی دیدمش اصلا باش حال نکردم کجای این سر ولاوی اینقدر جذاب بود صدا درجه یکی داشت و آدم خوشتیپی بود و تماشاش موقع دوئل و راه رفتن و این حرفو خیلی حال میداد ولی اصلا شبیه اون حملتی که دیبی میگفت نبود بیشتر از اینکه آدم ناراحت درب و داغونی باشه شبیه ژنرالا بود بهترین جایی فیلمم موقعی بودش که داداش افلیا میخواست بره و باباش داشت نصیتش میکرد همون داداشی که آخر سر با حمله دول می کرد. آفلی هم مسخره بازیش گرفته بود و با داداشش شوخی میکرد مدام خنجرش رو از غلافش در می آورد و هی با اون شوخی میکرد. اونم درست موقعی که باباش داشت نسیتش میکرد. این صحنه خوب بود، خیلی باشحال کردم. ولی دیگه از این صحنه ها زیاد نمی دیدی فیبی فقط از اون صحنه خوشش اومد که حمله سگشو ناز میکرد فیبی خیال می این خیلی باحه و واقعا هم بود. لازمه عوض این فیلم خودم هتنو بخونم مشکل من اینه که باید همیشه همه چیزو خودم بخونم اگه بازیگری بازیش کنه به زور گوش میکنم مدام نگران اینم که مباده بازیگره جایی از کارو علکی و اقراغامیز پیش بره بیلیتارو که خریدم تاکسی گرفتم و رفتم پارک پولم کم کم داشت تمام میشد و بهتر بود با مترو میرفتم دوست داشتم زودتر از برادوی کوفتی بزنم بیرون پارک نکبتی بود خیلی سرد نبود ولی هنوز آفتاب هم نزده بود تو پارک هم انگار جز انسک و اخ و توف و تحصیگار و سندلی که از همون دور خیصیشون معلوم بود چیزی دیگه ای وجود نداشت همین افسرده ترم کرد گاهی بیدلیل موقعی را رفتن سرمو میافتاد به چونم اصلا انگار نه انگار نزدیکه کریسمس بود رفتم سمت مال چون میدونستم فیبی همیشه میره اونجا فیبی دوست داره کنار جایگاه نوازنده اسکیت بازی کنه جالبه منم که بچه بودم دوست داشتم همونجا اسکیت بازی کنم وقتی رسیدم ندیدمش چند تا بچه داشتن اون برای اسکیت بازی میکردن و دوتا پسرم دستکش بیسبال دستشون کرده بودن و برای هم توپ مینداختن ولی خبری از فیبی نبود دختر بچه دیدم که همسن سال فیبی بود و تنهایی روی نیمکت نشسته بود به بستن اسکیتاش گفتم شاید فیبی رو بشنسته و بدون کجاست رفتم کنارش نشستم و پرسیدم تو فیبی کالفیدو رو پرسید کی؟ جیم پاش بود و تا لباس رو هم پوشیده بود پیدا بود تلم شدن این همه لباس کار ماما نشه. فیبی کالفید خیابونه هفته دیگه کم میشینه کلاس شاهر تو فیبی رو میشناسی؟ آره برادرش هم میدونی کجاست؟ شگرد خانم کالونه مگه نه؟ نمیدونم آره گمونم احتمالا الان موزه باشه ما شنبه هفته پیش رفتیم کدوم موزه؟ شونه بالا انداخت که چه میدونم موزه دیگه؟ میدونم ولی اون ای که توش نقاشیه یا اونی که سرخ پوست داره کدومش همونی که توش سرخ پوست داره ازش تشکر کردم و پاشدم برم که یه یادم یادم افتاد امروز یک شنبه است به دختره گفتم امروز که یک شنبه است در اومد گفت خب پس نرفته بعد جور درگیر بستن اسکیتش بود دستگش نداشت و دستش حسابی غیرمز شده بود کمکش کردم سالا بود آچار اسکیت دستم نگرفته بودم ولی عجیب نبود چون از الان تا صد سال دیگم چشم بسته از پس بستن اسکیت و اینو برمیام اسکیت و برش بستم ازم تشکر کرد دختر کچوله معدبی بود حاشق اینم که اگه قرار اسکیت بچی براش ببندم معدب و آروم باشه خیلی از بچه و معدبن. آره خیلیشون ازش پرسیدم دوست با هم شیراک داغی چیز بزنیم ولی تاررف رو راحت کرد گفت باید بره دوستشو ببینه بچه ها همیشه بهونهه دیدن دوستاشونو دارن این حسابی میره حسابم با اینکه یک شنبه بود و فیبی سر کلاس نبود و با اینکه هوای نکبت و بیحالیم بود رفتم سمت موزه تاریخ طبیعی میدونستم منظور دختر همین موزه است چم خم موذ از بر بودم فبی همون مدرسه می رفت که من بچگیام می رفتم ما هم همیشه می بردن اونجا معلمی داشتیم به نام خانم اگلیتینجر که شنبه به شنبه می بردمون اونجا گاهی هم می رفتیم بخش حیوانات و گاهی هم می رفتیم بخش صنایع دستی سرخ بوستا کوزه و سبد حصیری و این حرفا خاطره خوبی شده بود یادم بعد از دیدن صنایع دستی سرخپوستا می رفتیم اتاق کنفرانس بزرگ موزه و برامون فیلم پخش میکردن مستندی درباره کلیستو فکر می‌کنم. همیشه هم همین فیلم پخش میکردن فیلم درباره کشت و قراری امپراتور داوود کولومب بود. کلمی که می‌ره از پادشاه فردینان دو ملکه ایزابل پول قرض می‌کنه تا کشتی به خراب بعد ملأونه علیه شورش میکنن هیچ واقعیتی از حواسش به فیلم نبود، ولی همیشه کلی آب نبود، و آدم، سو، هله‌هول هم رو می‌بردیم. اتاقم هم بوی خوبی می‌داد. بود شبیه بارونی بود که بیرون می‌بارید. حتی اگه بارونم نمی اومد حس می کردی تو دنج و بهترین جای دنیایی اون موزه لنتی رو خیلی دوست دارم. یادمه برای رسیدن به اتاق کنفرانس باید از بخش سرخ رد دارد می شدی. بخش سرخ بوستا فضای خیلی بزرگی بود که حتی توش حق پچ پچ کردنم نداشتی اول معلم میرفت بعد پشت سرشم بچه ها بچه دوتا صف می شدن هر کسی با یکی دیگه همکن اکثر اوقات همگروهیم دختری بود به اسم گرترود لوین. عاشق این بود که دستمو بگیره. همیشه خودم دستش یا نوچ بود یا هرخ کرده بود. کف اونجا سنگ فرش بود و اگه تیله‌ای چیزی می‌انداختی رو زمین، همچین دنگ دنگ بالا پایی می پرید که معلم نگه می داشت و برمیگش ببینه چه خبره. ما هیچ وقت ناراحت نمیشد بعد بعد از کنار اون کشتی جنگی دراز سرخ بوستا راحت می‌شودی که طولش اندازه سه تا کادیلاک بود. بیست دو سرخ پوس روش بودن یه سری پارو میزدن و یه سری هم وایستادی بودن نگاه میکردن همشونم هم روسرحتششون گریم جنگی داشتن یکیشون که ته کشتی بود از این ماسکا هم داشت خیلی مرموز بود. انگاری جادوگر قبیله بود هم ازش می میترسیدم هم ازش خوشم می اومد. کافی بود از کنار کشتی که رد می شدی به یکی از چیزای اطرافش دستمسی بزنی تا نگبان موزه درجه بگه. بچه جون به چیزی دست زنی ولی لحنش مثل این پلیس خشن نبود. بعد از یه ویترین شیشه‌ای رد می که توش سرخ بوستا داشتن دور هم آتیش درست میکردن. یکی از زنها هم یه ملافه یو و میداد. یه جوری خم شده بود که میشد سینه هاشو دید، هممون حتی دختر خوب سینه هاشو برانداز میکردن. خب بالاخره اون موقع همه بچه بودیم. قبل از اینکه وارد اتاق کنفرانسچیم از کنار دسته یه اسکی رد شدیم، یخ دریا رو سوراخ کرده بود و داشت ماهی می‌گرفت. کناره کنار رو پاشم دو تا ماهی انداخته بود. پسر موزه پر بود از وییتترین شیشه‌ای. تازه طبقه بالا تعدادشون هم بیشتر می شد. آهویی که کنار رودخونه داشت آب میخورد، پرنده هایی که کوچ میکردن سمت جنوب. پرنده های جوی هم تاکسی درمی بودن از بند آویزونشون کرده بودند. بقیهشونم که پشت سر بودن، رو دیوار نقاشی شده بودن ولی فیگورشون فیگور پرواز به جنوب بود اگه سرخم میکردی و سر و تهنگاشون میکردی به خیال داشتن با سرعت بیشتری پرواز میکردن بهترین حسنه موزه همین ثابت بودن همه و عوض نشدنشون بود اصلا هیچ که ات جاش جمع نمیخورد هزار بارم که می رفتی می بازم اون ازگیموه همون دوتا ماهی رو به دهن داشت و پرنده ها هنوز داشتن می رفتن جنوب و آهو با اون شاخ قشنگ و پاهای نازک و پوست نرمش داشت آب می خورد و زن سرخ بوستم داشت همون ملافرده کن می داد هیچ وقتیش که از عوض نمی شد. فقط تویی که عوض می شی. منظورم فقط پیشتر شدن و این این نیست. پیرم که نشی هیچ وقت این قبلت نسی تو مدام عوض میشی تو همچین فصلی هاورکوت میپوشی یا مثلا بچهی که آخرین بار همگریت بود این بار سرما میخوره تو باید همگروی تازهی پیدا کنی یا عوض خانم اگلی تیجنر معلم دیگه با آت میاد یا خبرت میکنن مامان بابا تو دستشویی بزن بزن کردن یا مثلا از کنار یکی از این چاله های گازایی رد میشه که روش رنگین کمون روغن افتاده کلن منظور اینه که عوض شدی دیگه نمیتونم توضیحش بدم حتی اگه میتونستمم دلم نمیخواست این آدم بگم کلا شکاریمو موقعی را رفتن در آوردم گذاشتم سرم میدونستم آشنا نمیبینم و هوا هم خیلی دم داشت برای خودم را رفتم و را رفتم و به فیبی فکر کردم که شمبا عین من به موزه میرفت دلم میخواست بدونم که نگاهش این منه یا چطور به هر چیزی نگاه میکنه خودش تغییر خودش رو احساس میکنه فکر کردم به همین چیز خیلی ناراحتم کرد ولی همچین خوشحال هم نکرد بعضی از چیزا باید همینطوری باشن که هستن بعد بذاری توی یکی از همین ویترینای بزرگ موزه به حال خودشون باشن میدونم غیر ممکنه ولی خیلی هم بد نیست سوراه داشتم به این چیزا فکر میکردم از کنار زمین بازی رد شدم و دو تا بچه رو حل کلنگ دیدم میکشون یک کمی چاق بود دست گذاشتم طرفی که بچه لاغر نشسته بود که وزن بگیره و بیاد با این ولی دیدم از کارم نارد شد منم بیخیال شدم و رفتم بعد اتفاق جالبی افتاد وقتی رسیدم دم موزه با خودم گفتم اگه به هم یه میلیونم بدن تو نمیرم حالشو نداشتم این همه راه اومده بودم ولی حال نداشتم برم تو اگه فیبی بود حتما میرفتم ولی اونجا نبود جلو موزه برای بولتیمور تاکسی گرفتم همچین حال رفتن نداشتم ولی قرارم با سالی و چیکار میکردم